بسنده احمد محمود گوینده مجید آقا کریمی پدر زد تو گوش کریم و گفت وردا بنویس کریم مداد را برداشت تا بنویسد پدر گفت پا پنسل نه برا قلم فرانسه بیار کریم تو ایوان مداد را شود کرد پشت بام دوات و قلم فرانسه را برداشت و برگشت پیش پدر بنویس قدقود مرغ خانه را پر کرد صدای پدر بلند شد خواهی تخم مرق ببن به گردنش از خونه بندازش بیرون انگاه تخم تلا کرده کریم پوز زد پدر گفت نخم بدبخت بنویس خاک به سر ما کریم اخم کرد زبانش رو لای دندان گرفت و نوشت خاک به سر ما پدر زد تو گوش کریم و گفت په توی مردس ساب مرده چی یادتون میدن؟ صدای زن از توی ایوان آمد کمتر سر به سر ای بچه بذار خو پدر بلند گفت آخه وقتی ما میگم ما ای که نباید بنویسه ما په به ناسلامتی کلاس سوم خو با صدای زن آمد خودتون با دو کلاس اکابر چیزی از بچه بیشتر نمیدونی؟ پدر زد. لا اله الا الله قوطی سیگار را برداشت و گفت کورشکا از سر بنویس کریم نوشته را خط زد. زن تو ایوان دنبه آب میکرد پدر گفت حالا بنویس روزی میاد که بزنم تو سرم و بگم قوره ترش کورم کنه کریم نوشت روزی میاد که بزنم تو سرم و بگویم قوره ترش کورم کند مرغ از صدا افتاد پدر درگیر پیچاندن سیگار بود بوی روغن دنبه اتاق را پر کرد بنویس حیفم میرزایی نوشت حیف از میرزایی. هممالی و هم سرم زیاده. نوشت هممالی هم از سرم زیاد است. پدر به سیگار پک زد و به نوشته نگاه کرد و باز گفت آه بوییس ما آدم ولمل و سیابختی از. زم. بزرگ که شدم نونم به شاخ آهو بسن. کریم هزار بار بیشتر این حرف را شنیده بود کلمه به کلمه حفظش بود حرف پدر را نوشت خالا امضاش کن کریم سه خط تو در هم کشید پدر گفت تاریخم بزار. کریم درماند زیر چشمی به پدر نگاه کرد بعد یادش آمد با تردید نوشت دوشنبه روز عید قربان پدر گفت حالا بده تا نگرش دارم او وقت که بزرگ شدی نگی به فکرت نبودم و تربیتت نکردم نوشته را داد به پدر سرچنگ نشست و رمیده نگاه کرد پدر سطر اول را خواند و قرید این سنده یعنی امزان که کشیدی؟ هی فنون تا کریم به جنبد پدر محکم کوفت به سرش کریم جست زد تو حیات خاله شکر گوشت قربانی آورده بود گوشت پری تو پاشویه خاله پن شد رو زمین کریم از رو سرش جست زد سکندری خورد و بعد مثل تیر از خانه در رفت معلم کلاس چهارم ابتدایی گچه دست را تکاند و با پوشه قرمز کلاه بوغی درست کرد و گذاشت سر کریم. بچه های کلاس خندیدند. معلم گفت که کریم برود کنار تخت سیاه بایستد کریم من کرد. معلم حرفش را فهمید. گفت ربه مرکب 100 تومن با نرخ سی پنج درصد به مدت شش ماه جوابش این نمیشه بعد نرمخندی به لب رو کرد به میرک تو بیا میرک مسئله را حل کرد برگشت به کریم لبخند زد معلم گفت که برای میرک دست بزنند همه دست زدند چشمان کریم جوشید معلم گفت دستاتم بالا بگیر کریم حق حق کرد معلم گفت پای راستم بالا کلاس پر شد از خنده اگر اینطور پیش برود و اگر کریم زنده بماند سی سال، سی و دو سال بعد یک روز گرم تابستانی که کریم نشسته است پشت میز اداره تلفن رئیس دبیرخانه زنگ میزند چشم کریم به دفتر ثبت نامه هاست پیپش را گذاشته است تو زیر سیگاری و به فکر ریزش موی سر است آقای مکری گوشی را بر می دارد. بله؟ خارش میکنم در گوشی را میگیرد و برمیگردد به کریم صد بار به تو گفتم تلفن دبیرخونه را به کسی نده کریم از جا بر برمیخیزد نگاهش سرگردان است من قربم به کسی ندادم آقای متری می میکند خیلی خوب بهش تذکر بده کریم گوشی را میگیرد چشم میشنود خود کریم آقا به ماشین نویس نگاه میکند شاید تختق را کم کنند میگوید بله البته خودم هستم قربون میشنود انگار منو نشناختی کریم آقا سر تکان میدهد و میگوید خب بله قربان نه انگار بله میشنود اگر بله کی هستم به حال حسده مردم حسرت می خورد و میگوید صداتون خیلی آشناست می میشنود گلی به جمالت استاد کریم من کرمی هستم کرمی کالای خانه فکر می کند که قصد دیگه زود پس سه ماه قبل تمام شده است و فکر می کند که کرمی با آن دم و دستگاه و آن دکپز که پول پارو می کند بیخود وقتش را تلف نمی کند که به او تلفن بزنند و بعد بعد از احوالپرسی پرسی و تعارفات میشنود که میرک یادش هست؟ یادش نمیآید. چیزی توی ذهنش جابجا جا می شود. شاید اصلا دلش نمی خواهد یادش بیاید. می شنود حق داری اوس کریم بیست و سال ازش خبر نداری و باز می شنود واسل شد یک هو همه چیز مثل تومار در هم میپیچد و پس می رود کریم نفس تازه می کند و با اشتیاق می‌گوید واصل شد <تصفيق> یادش به خیر می شنود از آمریکا اومده دلش میخواد یه شب دوستان دویرستان دور هم باشیم باشگاه نفت تا حالا امین و نیما را پیدا کردم تو آبادان ایمنم بندر مشوره مانی شوشتر همه میان تو پنجمی هستی میای که میگوید که این روزها حال و حوصله میهمانی ندارد اما ته دلش میخواهد برود کرمی اصرار میکند کریم رضا و نارضا میگوید که میرود میشنود که برایش کارت میفرستد با تعجب میگوید کارت و میگوید برای 4 نه تا آدم میشنود یادگاری اوس کریم بعضی از لحظهای زندگی لطف خاصی دارن که باید خاطرشون حفظ کرد شاعرا که اینو بهتر میفهمن و بعد بعد از حرفهای دیگر گوشی را میگذارد بر می گردد سر میزش مکری می گوید؟ قرار بود تذکر بدیکریم می‌نشیند پشت میز. پیپ را بر می دارد و میگوید چشم فرون. توتون خشک و بدبو را با ته مداد نیم سوخته میکوبد دود پیپ را در میآورد چند پک چارواداری میزند حجم آشفتهی از دود پیش چشمش را تیره میکند همین چند لحظه قبل قطار مسافری تهران راه افتاد و میرک رفت کریم و کرمی و چند تا دیگر از بچه ها تا انتهای سکوی ایستگاه دویدند مادر میرک آراسته و معطر با دستمال سفیدی گوشه های چشم را پاک کرد کریم خیال کرد که باید تای همان دستمالی باشد که سال قبل وقتی قلم پایش خراش برداشته بود میرک به او داده بود تا خون را بند بیاورد. دستمال بوی خوش میداد از سفیدی آبی میزد. دلش نیومده بود که دستمال را خونی کند. اما زیر نگاه پرغرور میرک ناچار شده بود. قطار رفت. پدر میرک از جا تکان نخورد بار دوم بود که می‌دیدش به اسای آبنوس نقر کوب تکیه داده بود مثل مجسمه گردن راست گرفته بود و به قطار نگاه می‌کرد به نظر کریم آمد که پیر شده است ایستگاه شلوغ بود آخر سکو کریم فریاد زد واصل شد میرک هر دو دست را تکان داد قطار رفت و میرک رفت برود بیروت. از دانشگاه آمریکایی بیروت پذیرش گرفته بود. رفت که بعد یا بعدتر برود آمریکا دود تلخ و تند پیپ کریم را سر حال آورد. لب خند زد. شاعرا که اینو بهتر میفهمند. باید به فکر ردیف کردن چند بیت شعر باشد تا سر میز هم به میرک خوشامد گفته باشد و هم شور و حالی برانگیزد. باید به میرک بفهماند. در می‌ماند که چه چیزی را باید به میرک بفهماند. به او بفهماند که شاعر است و دو سر و گردن از او بلندتر است. بگوید که اگر حال و روز میرک را داشت او هم میتوانست برود خارج و پزشک شود استاد دانشگاه شود پروفسور شود و حتی با ذهن قررایی که دارد یا داشت میتوانست چیزی کشف کند یا اختراع کند که نامش در تاریخ بماند اینجا که میرسد سرتکان میدهد مرد شورش را ببرد پوزخند میزند حالا هم نامش در تاریخ می میشود باید شعرهایش را جمع و جور کند و دیوانش را چاپ کند. اگر هم نشد، غمی ندارد. حافظ که دیوانش را خودش چاب نکرد. سرش را گذاشت زمین، آن وقت همه میفهمند که ما اصلا ملت مرده پرستی هستیم. باز پوزخند می زند. کبریت میزند تا پیپ خاموش شده را روشن کند. قصد می کند که شعر خوشامد آمد را همانجا پشت میز اداره بگوید. اما تقتق -تق ماشین تحریر. عیبی ندارد. چند پک می زند و مداد را بر و فکر می کند و مینویسد یار دیرین میرک رکه فال. مستخدم می آید و یک دست نامه امضا شده می رو دفتر ثبت نامه‌ها. کریم به نامه ها نگاه می کند. رئیس بد اونق است مدیر امور اداری بد اونغ تر است کارها پیش نمی رود کسی جواب نمیدهد. باید پیرو زد پیرو زد پیرو زد بدتر از همه نفق شکم است که رو احساس کریم اثر میگذارد. چقدر قبل از غذا نمک و میوه بخورد چقدر با غذا و بعد از غذا قرص حازم بخورد آویشن بخورد دستورها که یکی نیست اصلا حضرات پزشک نه معده که پیر شد دیگر جواب نمیدهد سرتکان میدهد. شاید به روزهایی فکر می کند که معدهش سنگ را آب میکرد. بعد از فوتبال دست جمعی از میدان سروشیه راه میافتدادند، شلوغ و پر سر و صدا. همیشه پاتوق اولشان جگرکی تهران گاف کش بود. با کرمی مسابقه میگذاشت ده سیخ جگر، دنبلان، دو قلوه دو نان با فلفل سبز و ترشی موسی رو بعد هم چهار تا سمبوسه که دکانش بعد از جگرکی بود کمی تر از در کوچک مسجد و باز مثل همیشه میرک پول میداد خودش لب نمیزد میرک تو این کارها کمتر قاطی بچه‌ها میشد عاشق فوتبال بود مهاجم بود نک حمله و کریم هر وقت از گوش چپ پاس میداد و میرک توپ را میگرفت میگفت واصل شد یادش به خیر پیپ کریم دارد خاموش میشود باید با ته مداد بکوبدش و با سر انگشت خفش کند و میک بزند باید خودش را سرزنش کند که چرا حال و روز میرک را نپرسیده است خلقش اینطور است یادش میآید که رفته بود پزشکی بخواند یا روانپزشکی. پزشکی میرک که میرود گاهی حرفش هست و گاه نیست و بعد از خاطرش میرود حتی وقتی بعدها خاطره خوش تیم دبیرستان شاپور را تعریف میکند واصل شد هم میشود مال خودش پاس که میداد میگفتم واصل شد و بعد از سربازی نابدل فوتبال را کنار میگذارد تاندونات ورم کرده جوون ملتحب شدن تاندون علاجش چیه فوتبال نکنی دوا بخوری چه فرمایشی آقای دکتر با فوتبال زندم همین که گفتم بازی فوتبال را رها می کند اما خاطره تیم دبیرستان شاپور هیچگاه رهایش نمی کند ببخشین آقا انگار ما همدیگر رو میشناسیم گمون نمی کنم. من کریم هستم کریم از آشنایی با شما خوشحالم خوشحال؟ عدا در میاری؟ یعنی اسم کریم تو رو یاد هیچکس یادم نمیاد که قبلا دستوردان مرد حسابی درست شقیقام سفید شده اما کریم کریم خب بله کریم اما تا حالا سعادت از سعادت مهادت حرف نزن راست و پوسکنده بزن زیرش بگو نمیشناسمت نمیدونم شایدم بشناسم شایدم شاید حتما میشناسی باید بشناسی خب بله لابد این حرف نزن که دلخور میشم مرد سابیاخه چطور ممکنه قهرمان فوتبال شهر خودتو نشناسی؟ قهرمان فوتبال؟ واصل شد؟ یادت نمیاد؟ فشار بده به این کلت چطور یادت نیست که وقتی میره از گوش چپاس میداد؟ لا الهالله بابا همین دیروز بود دیروز حکایت ده دوازده سال پیش است. حالا بیا و زحمت بکش و برای شهر و دیارت افتخار کسب کن پیپ کام نمی دهد توتونش سوخته است با نوک مداد نیم سوخته باید خالیش کند وقتش از که بگوید عجب گوهیست این دود میگوید. وقتش از که حساب کند تا آن وقت روز چند پیپ چاخ کرده است باید فکر کند که نفخ مده هم از همین دود است ریزش موی سر هم از همین دود است. بار اول که سیگار کشید کجا بود؟ کی بود؟ نباید چیزی به ذهنش برسد اما شبی که برای اولین بار از سیگار کیف کرد یادش است. لحظه روشنی از خاطراتش است و حتی یک ربایی مربع هم در وصف لذتش گفته است که باید در مطایبات دیوانش چاپ شود یادش بخیر. به یادت عزیزا دوتا پک زدم عزیزا مکیف ز آن پک شدم دوتا پک ز آن برگ تنباک مشت زدم پک شدم مشت صحرا و دشت همیشه این خاطره را تعریف می کند یعنی خلق و خوی کریم این طور است ای جوانی علال خصوص وقتی که آبجو خورده باشد. رفته بودیم اقدسیه، مانور دوره خوش سربازی، دانشکده احتیاط. انگار همین دیروزه. سر پست نشسته بودم و چرت می زدم. هوا بهشت بود. فرمانده رسید. نعره زد دانشجو کریم. مثل فنر از جا پریدم. باز خدا پدرشو بیا مرز اصله نبرده بود. بیچاره می شدم. فرمانده از اوناش بود. پاش و حواله میداد تنبی تنبیه هم کرد. بدو. هک هک هک با کوله و خاموت و اسلحه بدو. سه دور دور اردوگاه با بیلچو و گمگمه و سرنیزه. تلق تلق تلق. نفس هم گرفت. نشد دانشجو. از نو از پا افتادم. عصر بود. شب تو چادر و چا مشروب داشتن. زدم سبک شدم بعد سیگار یکی از بچه ها رو گرفتم پوک اول پک دوم یک هو هیک عالمی بود تمام تنم به خارخار افتاد رو هوا بودم یادش بخیر بعد از آن هر روز خدا کشیدم که دوباره پیداش کنم نشد که نشود پیپ را خالی می کند و میگذارد کنار. دسته نامه ها رو دفتر است. دل و دستش به کار نمی رود. تو خیالات خودش است. باید شعر انجمن ادبی چهارشنبه شب را گفته باشد. از وجناتش پیداس پیداست گفته است. تنها اشکال مختصری دارد که فنی نیست فکر را باید فکر بخواند. این همه شام تیره را چقدر هی سهر کنم چقدر هی قصه خورم چقدر هی فکر کنم دوباره بی اختیار پیپ را از تو زیر سیگاری بر می دارد، پرش می کند توتون را نرم نرمک با ته مداد می کوبد. چشمش به میز است. انگار که چیزی نمی بیند اینکه عیبی ای نداره همه ی شاعر از این گرفتاریا داشتن ضرورت وزن از چند تاشون اسم ببرم سهر فکر نه شعر آنقدر بلند و فخیم و محکم هست که این نقص بی اهمیت پیدا نباشد اصلا نقص نیست کبریت که میزند حواسش جا میآید الان کشیدم که پیپ را میگذارد رو دفتر. بناسلامتی پیپ میکشم که خرجم کمتر باشه سال پنجم بود که به این فکر افتاد پشت همین میز اداره بود کاغذ برداشت و حساب کرد دید اگر به جای سیگار خارجی توتون پیپ داخلی بکشد دست کم سالی هشت هزار و هشتزد و پانزده ریال سرفجویی دارد سالی دو پیپ ارزان قیمت و یکصد و چهار بسته توتون و دید حتی اگر دو برابر هم بشود، باز هم صرفه با پیپ است. به خصوص که پیپ مثل سیگار آفت مفکشی ندارد هفته اول رنگ پیپ رفت و دستش ترک برداشت، قاشقک را هم گم کرد فکر کرد که پیپ گران قیمت بخرد، گفت بی خود نمی گویند که هر گرانی بی حکمت نیست فکر کرد که با همان پیپ سر کند تا قیمت پیپ گران قیمت را پسنداز کند نشست و با حوصله دسته ترک خورده پیپ را با سیم زرد نازک سیم پیچی کرد از کار خودش راضی بود اگر چرک میشد با مسواک کهنه که تمیزش میکرد. شش ماه دوم پیپ دیگری خرید از همان جنس تا دست هم باشند هر هفته با یکی میکشید که فرصت باشد عرق لولش خشک شود چقدرم بد طعمه مکری می گوید چی بود طعم آقای کریم نامی؟ چرا نامها رو ثبت نمی کنی؟ کریم می گوید چشم, چشم الان و نامه ها رو دسته می پدر زد تو گوش کریم و گفت بخواب. کریم زد زیر گریه و گفت غلط کردم بابا دیگه نمیرم سر جیبت پدر تصمی را دور دست پیچاند و گفت دهتا زن گفت خو خون که نکرده ده شای ورداشته کلوچه خریده پدر گفت دوازده تا زن گفت اصلا خودم گفتم ورداره خو اینم دل داره پدر گفت، پونزده تا کریم دمر خوابید، اگر نمیخوابید به پنجاه تا هم میرسید جومت بزن بالا کریم پیراهن را بالا کشید، خشتک تنبان سیاهش شوره زده بود پدر زد زن گفت، یواش بزن شمر زل جوشن پدر محکمتر زد و زد و زد حالا پاشو برو اوتو شانه کریم را گرفت و داد تو مردانی و در را بست و برگشت به زن امروز نام بهش دادی ندادی اگر اینطور طور پیش برود کریم به همه چیز عادت می کند همیشه از یک راه می رود چابخانه اصر تلایی اتغ است بچه ها تو دفتر چاپخانه جمع میشوند و بعد راه میافتند و میروند خیام. هرکس حسابش جداست بعد دیر وقت که کلشان گرم می شود و گاهی هوس دود میکنند جاشان یا کپر عمل است است تو گدال خشمال و یا خانه احمدفری تو کمپلو عادت شده است اس که می شود ریشش را میتراشد رخت میپوشد و از خانه که میزند بیرون چیزی به آفتاب نشین نمانده است خیابان مولوی را پشت سر میگذارد کج میکند تو حافظ و نرم نرمک میرود تا میرسد سر فردوسی خانه میرک همین جاست حالا دیگر میرک را از یاد برده است بار اول که پدر میرک را دیده بود سالهای سال قبل بود کلاس پنجم ابتدایی بود یک روز غروب که از در خانه میرک میگذشت، حواس کرده بود تا از در نیمه باز باغ خانه داخل را نگاه کند و نگاه کرده بود. دیده بود که میرک سوار دوچرخه دور باخچه های بزرگ گل میگردد. از زیر آلاچیق میگذرد، لای نخل های بلند مار پیچ میرود. بعد می آید و استخر بزرگ را دور میزند و به در خانه که میرسد بر می کریم مانده بود تا میرک برگردد و صداش کند همین وقت بوی برنج خام آمده بود که تو آب جوش قُل میخورد و هوش از سر کریم رفته بود و کم مانده بود که میرک به در باغ برسد و برگردد و صداش نکند اما دستپاچه صداش کرده بود میرک ترمز کرده بود و یک بارا زمین گذاشته بود و با تعجب به کریم نگاه کرده بود گونه‌های میرک مثل مخمل سرخ و مرتوب بود. کریم خودباخته بیخود گفته بود که تشنه است. میرک کریم را برده بود تو باغ تا از شیر آب بخورد. کریم دیده بود که آن سر باغ ساختمان بزرگی هست که درهای بزرگ شیشه‌ای و پنجره‌های بزرگ مشبک دارد. دیده بود که ستونها گچ است و ایوان با چند چراغ سقفی روشن است و میز بزرگی وسط ایوان است و چند تا سندلی سفید جا به جا جدا از هم و کنار هم چیده شده است و دیده بود که همه جای باق پایه های چودنی هست و سر هر پایه حباب بزرگ رنگی روشن است بوی برنج خام را از یاد برده بود و خم شده بود تا از شیر آب بخورد تابستان بود مدرسه ها تعطیل بود و سه چه سالی مانده بود تا هر دو عضو تیم فوتبال دبیرستان شاپور شوند. کریم تو قهوه خانه محتابی پادویی می کرد. دمپایی پاش بود و قاب دستمال پر کمرش بود. آب که خورده بود و قدر راست کرده بود دیده بود که پدر میرک ایستاده است و نگاهش می کند و میرک دوچرخه به دست و رمیده منتظر است تا آب بخورد و برود دیده بود که پدر میرک قامت میانه ای دارد چشمانش درشت است و پیراهن سفید آستین بلند و شلوار توسی پوشیده است عصا هم دستش بود که زیادی به نظر می آمد. پدر میرک جوان و سرحال بود کریم می تا پیپ را روشن کند همیشه سر نبش خیابان فردوسی که می رسید بو می آمد. بوی سبزی تفت داده تو روغن خوب کرمانشاهی عطر برنج انبربو، پیازداغ، سیرداغ و گاهی بوی چرب و شیرین حلوا همیشه هم کسانی از در کوچک پشت خانه رفت آمد می می‌کنند که از شتابشان، رفتارشان، سر و ریختشان و چیزهایی که دستشان است معلوم است همه در تدارک تأمین رفاه و خرد و خوراک اهل خانه هستند. با لگت زد تو آبگاه کریم حالا کارت به جای رسیده که به دختر زارنایه متلک میگی؟ نفس تو سینه کریم گره خورد کبود شد و به خودش پیچید و زن جیغ کشید کشتیش و هجوم برد به مردش بی انصاف و دو بامبی کوفت به سینه مردش خب به چرا کشتی؟ مرد پالتو را برداشت و از خانه رفت بیرون هوا سرد بود اینطور که پیش برود پای کریم اگر زنده بماند به دوب هم باز می شود بار اول با کرمی می رود دبیرستان تمام شده است و میرک رفته است ایمن گویا تو فکر ازدواج با دختر آقای نیام کارمند عالی رتبه شرکت نفت است بعد باز هم میروند. هوا خوب است تو اتاق می نشینند و در را میبندند و آبجو میخورند. کریم هنوز سیگار نمی کشد اما خریده است و گذاشته است تو جیب پیراهن تا جلد قرمز سیگار و حروف انگلیسی از پس پارچه سفید و نازک پیدا باشد مریک میگوید یه نخود دود کنیم. مریک خوش ادا کریم را گرفته است. میپرسد مریک یعنی چی؟ زن میگوید که نمیداند کریم میفهمد که زن از این اسم همینطوری خوشش آمده است. میگوید فارسی نیست. حیفه زبون فارسی به این شیرینی و این همه اسمای خوب فارسی کرمی میگوید جون هرچی نامرده نامرد پای شعر و ادب و اینجا نکشوش کریم زن از عسکری میپرسد که شاعر است کریم سرخ میشود و لبخند میزند کرمی خند خنده خنده میگوید استاد کریم میگوید که باز آبجو بیاورند گرفتار اداها و حرکت چشمان مریک شده است هوس میکند شعر تازهش را بخواند سرش گرم شده است. کرمی میگوید: بابا ولکن به عشقمون برسیم. مریک آرام میزند به گونهاش و میگوید: این تنب میره بزا بخونه. کریم اول موی تونا که سرش را شانه میکند. همیشه شانه همراهش دارد و بعد گلو صاف میکند و میخواند. ما آشقیم و عشق به ما رنگ میزند اقبال بین به پای خسته ما سنگ میزند زنجیر زلف تو دل ما را اسیر کرد عشقت نگر که بر دل ما چنگ میزند مریک به زلف کوتاه خود دست میکشد و سر و گردن تکان میدهد و میرود تو شعر کریم. همه اینا را تو کلت در میاری؟ کریم میگوید: خب معلومه از فکر خودم. مریک میگوید: خود, خود خود خودت؟ کریم میگوید: می گوید شک داری؟ مریک میگوید: آخ عزیز جون چه میشه که ای میشه؟ کریم با انگوش میزند به شقیقه تخیل قوی مریک میگوید بچه چرا من نمیتونم کریم میگوید استعداد میخواد جنم میخواد مریک میگوید یعنی چطوری؟ کریم میگوید باید تجسم کنی باید چشاتو ببندی و همه چیزو ببینی مریک میگوید یعنی تو میبینی چریم میگوید میبینم مریک میگوید پس یقین تو خلوچلو وچل و دیوونه هستی کرمی قهقهه میزند کریم دماغ میشود و مریک بطری آبجو را میگیرد. دم دهان کریم میگوید، اخ نکن جیگر جون شوخی کردم، بزن روشن شو. که بازنشسته می شود کریم جایش می نشیند سربازی رفته است و خیالش از این بابت راحت است روز اول که میرود اداره از قنادی نبش خیابان سیمتری دو کیلو زبان و پاپیون میخرد و تو دویرخانه میگرداند بعد میرود کارگزینی بعد میرود حسابداری و بعد وقتی برمیگردد پشت میزش بنشیند میبیند مرد پیری که صرفه میکند و پیپ ارزان قیمت میکشد و با ته مداد نیم سختهی توتون را میکوبد کنار میز رئیس دبیرخانه نشسته است و اصار را لای پا گرفته است کریم سیگارش را آتش میزند و پیرمرد مرد نگاهش میکند تازه سیگاری شده است مکری برمیگردد به کریم به پیرمرد مرد اشاره میکند و میگوید آقای میان همکار قبلی ما کریم اسمش را شنیده است از جا برمیخیزد جعبهٔ شیرینی را برمیدارد و میرود طرفش دست میدهد و احوالش را میپرسد و شیرینی تعارفش میکند دست میان با پیپ میلرزد خلت راه حرفش را میبندد آه میکشد و میگوید ما این اداره را اداره کردیم هی جوونی شیرینی بر می دارد و به کریم نگاه می کند کریم انگار شرمنده می شود بر می گردد و مینشیند سر جایش و به صدای دندانهای میان گوش می دهد. میان راحت نمی خورد دندانهاش جابجا جا و با سر انگوش جاشان می اندازد. شیرینی که تمام می شود می گوید اگه یه وقت دیدی چیزی از من تو کشوا جا مونده بازم میام. و پیپ را میکوبد و کبریت میزند و میکشد و سرفه میکند و خلت سینه را تو دستمال تف میکند. کریم که شوها را نگاه میکند شطور با بار گم میشود. حوصله نمی کند جا به جاشان کند. میگذارد برای بعد. پدر گوش کریم را پیچاند و پیچاند. بعد به دنبال خودش کشیدش و با اردنگی از اتاق پرتش کرد بیرون و داد زد رو گنج نخوابیدم که هر روز گیوه هر روز تنبون هر روز جومه کتاب قلم این دفعه قلم رنگی زن گفت برای مرد میخواد باید نقاشی بکشه مرد گفت سرشو بخوره پسری تحاف که زن گفت به چای مردم یه سنده میکشم برایشون جایزه میکرم خب وقت کریم با دار درختی که میکشه مرد گفت میخوام که 100 سال زیام نکشه نمره نقاشی کریم همیشه خوب بود حقوق اول را که میگیرد کفش نو میخردم جاکت پشمی میخرد برای خواهرش فانیله میخرد و دو تا تومانی می‌گذارد. تو مشت مادرش زمستان است، هوا سرد است. از که قصد می کند برود چاپخانه عصر طلایی تازه پات را از کتابفروشی فروشی نوین انداخته بودند به چاپخانه. پالتوی کهنه پدر را که سالها پیش از حراجی خریده بود بر می دارد و میرود بیرون. پدر خانه نیست کریم راه میافتد توی پالتو گرم است هوا خیلی سرد شده است حس می کند که گرمای پالتو اطمینان می‌دهد و لذت بخش است فکر می کند که ماه دیگر از حراجی یک پالتو بخرد که نمی‌خرد. فکر می کند یکی از اتاق‌های خانه را بگیرد و بهش سر و سامان بدهد تخت خواب بخرد میز تحریر بخرد یک زیدو و یک جا کتابی بخرد خورد خورد یا یک جا و قستی همین حرفها را به بچه ها می گوید که پدر میرسد. میخواسته برود فاتحه، هوا سرد شده و رفته خانه پالتو را بردارد. پدر میدانسته که پاتغ کریم کجاست. میرسد و به هیچ حرفی پالتو را از تن کریم در میآورد. میپوشد و می رود. کریم جغ نمیزند. سرما را حس می کند. بچه ها هیچ نمیگویند. کریم میگوید که زودتر بروند خیام و با عرق خودشان را گرم کنند. میروند. ماه دوم وقتی که حقوق میگیرد با پدر حرفش میشود و دلش را خالی میکند. میگوید که پدر و مادر و خواهر تو یک اتاق زندگی کنند و اتاق دیگر را بدهند به او. خانه دو اتاق بیشتر ندارد. پدر از کوره در میرود و هرچه دم دهانش میآید میگوید: که پیر شده است و کریم به جای اینکه زیر بالش را بگیرد هر روز زندگی را رو بر او تنگ تر می, می گوید میگوید که بزرگش کرده تا دیپلم خوانده است کار هم می کند کمک به خرج خانه هم نمی کند و میگوید که اگر میخواهد اتاق جدا داشته باشد برود جایی کرایه کند. کریم می رود پایین شهر بعد از آخر آسفالت و جایی اجاره می کند کتابها و رخت خوابش را میبرد اتاق برق دارد. یک والور میخرد، یک کتری و قاشق و بشخاب هم میخرد. و بعد سالها بعد که از زنش جدا می شود و همه ی وسایل خانه را به او میدهد تا سبک شود، یک دیگ زود پس هم میخرد. قصد می کند که اصلا به خانه سر نزند و نمیزند تا خواهرش عروس می شود. آن هم یک توک پا. بعد از آن تا مادرش زنده است، گاهی به سراغش می رود. اول اتاق کریم را جم و جور می کند بعد می نشیند و کمی گریه می کند و التماس می کند که برگردد خانه ولی بر نمی گردد که نمی گردد بار اول که کریم زرده تخم مرغ به سرش میمالد زنش قهر می کند و میرود خانه پدرش انگار منتظر بهانه بوده است کریم بوی زهم زرده را حس نمی کند زنش می گوید برو خودتو علاج کن تو و حس نمی کنی، تو اصلا احساس نداری کریم میگوید مینا جان این که قهر و دعوا نداره موی سرم میریزه یه ساعت دیگه میشورمش زن میگوید تاقت یه ندارم بوی کثافت میده بوی و نمیگوید گوه حرف را میخورد و دخترش را بغل می کند و ساک را برمیدارد و میرود کریم هیچ نمیگوید نگاه میکند تا زن از پله ها میرود پایین گوش میدهد تا صدای بسته شدن در خانه را بشنود یکو میترکد عجب غلطی کردم و دور خودش میگردد تو چلسالگی سالگی این چه گویی بود خوردم مینا ماشیننویس اداره بود روزی که ترفیع کریم را ماشین میکرد چشمش افتاده بود به کریم و لبخند زده بود دل کریم از جا کنده شده بود و شرمنده لبخند زده بود بعد انگار کسی زیر بالش را گرفته بود و برده بودش کارگزینی از بچه ها پرونده مینا را گرفته بود و دیده بود که سه ماه دیگر سی و چهار سالش تمام می شود. اما مینا رنگ و روی مینا حرف و حرکت و لبخند مینا جوانتر نشانش میداد. فوقش بیست یا بیست و سال دماغش که عیبی ندارد بزرگ است که بزرگ باشد در عوض چشمانش درشت و گیراست. است هم تو ذوق نمیزند خودش که رستم دستان نیست روز بعد خنده مینا را با خنده معنیدار جواب میدهد هفته بعد کریم میبیند که مینا لبخند به لب درخواست پانزده روز مرخصی میگذارد روی میز آقای مکری کریم پرسنده به مینا نگاه می کند مکری می گوید کارمون زیاده مینا خانم مینا می گوید کار منم واجب آقای مکری مکری می گوید شالا خبریه کریم سرخ می شود رنگ مینا می پرد و تند می گوید نه نه آقای مکری چند روز میخوام برم تهرون تهرون تو این زمستونی کار لازم دارم روزی که مینا برگشته بود دل کریم باز شده بود مینا دماغش را عمل کرده بود نوک دماغ برگشته بود و قد و قوارش کوچک شده بود اما خوب که نگاه کرده بود به نظرش آمده بود که انگار فاصله چشمهای مینا زیاد شده است و چشمها شیطنت و گرمای قبل از عمل جراحی دماغ را از دست دادهاند. خندها بیشتر شده بود، حرفها گرم شده بود، اما ده روز بعد، کریم وقتی برگشته بود تا به مینا لبخند بزند، دیده بود که مینا تو آینه به صورت خود نگاه می کند و قمگین است، کریم تو صورت مینا انگار چیز قریبه ای دیده بود مینا ملتفت شده بود آینه را گذاشته بود تو کیف و سرش رو انداخته بود پایین و تقتق -تق ماشین درآمده بود روز بعد مینا نیامده بود اداره مادرش آمده بود و درخواست پانزده روز مرخصی آورده بود بعدها وقتی که کریم و مینا ازدواج میکنند. کریم میفهمد که نوک دماغ عمل کرده مینا بنا کرده بوده است به شل شدن و دراز شدن و مینا ها و ها و گل سینه را فروخته است و باز رفته از تهران و با جراح مرافعه کرده است تا قبول کند با نصف و اجرت دوباره دماغش را عمل کند پس از این قرار روزی که اتاق آخر آسفات را خالی کرده بود قم دلش را گرفته بود چارده سالی میشد که تو این اتاق زندگی کرده بود، کتاب خوانده بود، شعر گفته بود، دوستان را دعوت کرده بود و گاهی منقلی گذاشته بود. دو خیابان بالاتر بالاخانه اجاره کرده بود و زندگی را با مینا شروع کرده بود و تصادفاً روز تولد خودش، روزی که چهل سالش تمام میشد دخترش به دنیا آمده بود. بعد هم پاپه زنش شده بود که اداره نرود، مینا اول زیر بار نرفته بود ولی بعد ناچار شده بود که استعفا کند و بنشیند سر خانه و زندگیش مینا که استعفا می کند زندگی سختتر می شود. حسرت پاتوق چاپخانه عصر طلایی به دل کریم می ماند. میبیند که اصرها باید کار کند وگرنه سر چوب زمین میماند. می رود سراغ ایمن با خودش میگوید که ایمن از همه زرنگ تر بوده است. ازدواج که کرد همه مسخرش کردند و گفتند که زنش یازده سال از خودش بزرگتر است. گفتند مادر فولاد زره نه از همه عاقل تر بود. هفته بعد از ازدواج تو امتحان ورودی شرکت نفت قبول شد. از همه هم بی بود و دو سال بعد سر از پست ریاست انبارهای بندر معشور در آورد. نفت خانوادگیه. ایمان را میفرستد سراغ کرمی. نفهمیده بود چه شده بود که یک هو کرمی از بانک استفا کرده بود و دو دهانه بزرگی تو فلک باز کرده بود و نمایندگی کالای خانه را هم گرفته بود. با کرمی خیلی فرق نداشت. با هم دیپلم گرفته بودند با هم رفته بودند سربازی تو جگرکی تهران گافکش به اندازه هم میخوردند زورشان یکی بود چندین و چند بار کشتی گرفته بودند و مچنداخته بودند که همیشه نتیجه مساوی بود با هم کلک میزدند و از میدان بارفروش‌ها هندوانه میدازدیدند با هم از دیوار کوتاه پشت سینما بالا میرفتند و چشم معمور کنترل را میپاییدند و بیبلیت میرفتند تو سالن. حتی تیر کریم با تیرکمان میزانتر بود. اگر کرمی دو تا گنجشک میزد، ردخور نداشت که او سه تا میزد. استخدامشان هم تقریبا با هم بود. این اینجا، آن آنجا. پس چطور شده بود که کرمی تو چشم شهر بزرگترین مغازه را باز کرده بود؟ عقل کریم به جایی نمیرسید. حرف شنیده بود اما باور نداشت. اگر یک استوار شهربانی چقدر حقوق و مداخل دارد که بتواند انقدر به پسرش کمک کند؟ نه اینها حرف است اصرها تو فروشگاه کالای خانه مشغول می شود کار دفتری و از رو می شود اما قر می زند. فرصت ندارد کتاب بخوند فرصت ندارد شعر بگوید حسرت روزهایی را می خورد که تک و تنها تو اتاق آخر آسفالت زندگی می کرد به انجمن میرسید، شعر میخواند، بحث میکرد، تنها بود اما عالمی داشت. میبیند اگر این طور پیش برود، خالی خالی میشود. باید هنر را ببوسد و بگذارد لب تاقچه. به خصوص که میبیند درآمد اضافی، بیشتر خرج اتینا میشود. زنش ماتیک گران میخرد، کفش گران میخرد و سلمانی گرانتر میرود. با مینا حرفش میشود، ای قرار باشه صبح تا شب کار کنم و تو اینجوری هدرش بدی که نکنم بهتره. مینا میگوید برو زنای مردم رو ببین چی میپوشن. مرد میگوید آخه آدم باید به جیب خودش نگاه کنه. زن میگوید به من چه مربوطه که تو ارز نداری؟ کریم زرد میشود. صداش میگیرد. خفه میگوید دفعه دیگه این حرفو نزنی وایلا باقی حرفش رو می‌خورد. و الا چی؟ لا اله الا لا نه بگو بگو اقلن تکلیفم رو بدونم کریم می گوید آخه زن ما هر دو آدم هستیم که نه به باریم نه به دار زندگیمون همینه که هست مینا می گوید. پس مردم چیکار کار که اینطور کریم حوصله نمی کند زن حرفش رو تمام کند سرخ می شود و میگوید: من چه میدونم مردم لابا دزدی دزدی زن چشمها را گشاد می و گردن میکشد تهمت بیخود به مردم نزن مردم ارزه دارن کریم گردن کج می کند ارزه دارن؟ بله که دارن مثل تو نیستن که امسال صداش کنن سال دیگه بگه کسی بود صدا می کرد. کریم دندان رو هم میساید و به مینا نگاه می کند. مینا دختر بچه را میگذارد روزانوها پستانک را میچپاند تو دهانش پاها را تکان تکان میدهد و با خودش حرف میزند مردم زرنگن به جای که وقتشون را سرف کتابایی آشقالی کنن پول در میارن دلم خوش شاعری صد من شعر به یه بزغالهی گر نمیارزه کریم میترکد بس کن زن و الا میاید بگوید با تیپا میندازمد بیرون اما نمیگوید. سابقه ندارد صدای کریم اینجور منفجر شده باشد. مینا اول جا میخورد. چند لحظه نگاه نگاه میکند. بعد یک یکو بچه را میگذارد زمین و برمیخیزد. دختر بچه می میزند. مینا رو در روی کریم میسد و تلخ میگوید این دفعه دومه که میگی و الا اما حرفتو نمیگی. بگو بگو. تو حتی از زنتم میترسی ترسی تو بزنی؟ دختر بچه کبود می شود کریم تند از اتاق می رود بیرون می رود اتاق دیگر بالاخانه دو اتاق بیشتر ندارد رخت می پوشد و بی خداحافظی می رود چهارشنبه شب است باید برود انجمن ادبی. عصر هم نرفته است فروشگاه کرم <تصفيق> روز بعد با کرمی حرفش می شود کرمی چشمش را میگذارد رو, می رو همو میگوید اینجا باید کار کنی دوست عزیز یه روز انجمن شعر یه روز مسابقه فوتبال یه روز ناخوشی بچه یه روز زن نه آقا جون اینطوری نمیشه با کار و کاسبی و تجارت جور در نمیاد کریم قصد می میکند بگوید مرد حسابی این مزخرفات چیه تو همونه که تو دبیرستان خر من بودی تو بازی سوار سوار پیاده سوار صد بار هزار بار سوارت شدم التماس میکردی که تو دسته تو باشم حالا برام آدم شدی؟ اما دندان روجگر میگذارد و نمیگوید سرش را میاندازد پایین و کف هر دو دستش خیص عرق میشود و بعد روز جمعه که ساندویچ میخرد و میرود مسابقه فوتبال را تماشا کند نیت می کند که اگر تیم شهرشان گل اول را بزند دیگر نرود فروشگاه کالای خانه. و اتفاقا تیم شهرشان گل اول و دوم را میزند و بازی با همین نتیجه هم تمام می شود و تماشاگران میدان را روسر میگیرند و کریم از شوق کلاهش را پرت می کند هوا موی سرش ریخته است و شقیقه هاش سفید شده است و چند ماهی می شود که کلاه به سر می گذارد و کلاه تو جماعت گم می شود کریم از آن روز به بعد مثل گذشته ها اصرها می نشیند تو اتاق و در را می بندد و شعر می خاند و قرولند مینا را نمی شنود پیپ را با نوک مداد نیم خالی می کند و صرفه می کند مکری می گوید سرما خوردی، اوز کریم کریم می گوید خیر آقای مکری، این توتون ساب مرده مکری میگوید گوید خب نکش کریم میگوید گوید چشم آقای مکری، تو فکرش هستم باز صرفه می کند. بلند می شود. کلاه بره را به سر میگذارد، گذارد، می روید دست شویی، خلط سینه را تف می کند، دست را می شوید و بر می گردد. کلاه را به شاخ جالباسی آویزان می کند و می و نامه های رسیده را از تو کازیه بر می دارد. به یکی از نامه ها نگاه می کند و می گوید عجیبه مکری می گوید چی عجیبه اوز کریم؟ می گوید. بعد از هیفده سال برای آقای میان به آدرس اداره نامه اومده. چندین سال بود که میان دیگر به اداره سر نمیزد. مکری عینک را روغوز دماغ جابجا می کند و به کریم خیره می شود. کریم باز می گوید: شما آدرس خونش رو میدونی آقای مکری مکری می گوید؟ میخوای نامه رو براش ببری؟ کریم می گوید: دو تا عکس پرسلی هم هست؟ مکری میگوید پرسونلی؟ کریم میگوید دو هفته پیش که کشوها رو بیرون کشیدم تا تمیزشون کنم، دیدم رفته لا درز کشو چسبیدن به قاب تخته ته. اکس ها زرد شده است. مشخصات میان پشت اکس ها نوشته شده است. مال هجده سال پیش است. سیبک بر گلوی مکری جابجا به جا می شود. خب، آب دهان را قورت می دهد. هم برای دفترچه بیمه بازنشستگی گرفته اضافه اومده. اصر کریم کلاه بره را به سر میگذارد. سرد است. شال به گردن می اندازد و پالتو می پوشد. زنش می گوید؟ کجا؟ میگوید که زود بر می گردد. زن میگوید؟ گفتم کجا؟ میگوید که میرود خانه میان و برمیگردد فوقش اگر دعوتش کند داخل یک پیاله چای میخورد خورد و برمیخیزد از وقتی که گرفته بود چاپخانه عصر طلایی نرفته بود گاه‌گداری بچه‌ها را میدید و میدید که کم کم شکل و شمایلشان عوض می شود به حوالی خانه میان میرسد میبیند شلوغ است میبیند کسانی مقابل خانه ایستادند و یک نشکش هم هست مکری گفته بود که سلامش برساند، گفته بود که اگر میان حال و حوصله دارد سری به اداره بزند، دوستان خوشحال میشوند و اگر خدای ناخاست ناخوش است پیغام بدهد که بروند عیادتش، کریم پیش می رود، می کنار مرد پیری که تاس است و سرش پایین است و تسبیح می گرداند، دستار شیرشکری مرد افتاده است دور گردنش، کریم صرفه می کند و میگوید. ببخشین حضرت آقا کسی فوت کرده؟ پیرمرد سربر سر می و نگاه می کند با میان انگار سیبی که نصف شده باشد دل کریم تکان می خورد. سرخ می شود باز می گوید عرض کردم کسی به رحمت خدا رفته پیرمرد سر تکان می دهد چشمان خسته پیرمرد خیس خیست می شود کریم بر می خانه توی راه نیم بطر کشمش می خرد و میپیچاند تو روزنامه و میگذارد تو جیب بقل پالتو بعد پایین تر می آید از رجب بقال خیارشور بخرد که ندارد فکر می کند که با همان تهمانده ترشی موسیر شب قبل سر کند چشم کریم از سرما به عشق می نشیند و دماغش سرخ می شود مینا میگوید اگه کردی نکردی کریم میگوید سرم سفید شده زن دیگه کسی منو نمیشناسه مینا میگوید تو به این چارتا موی شقیقه میگی سر دست وردار مرد کریم میگوید من رنگ میکنم چه بخوای چه نخوای مینا میگوید به خدای احد و واحد اگه رنگ کردی میرم خونه بابام کریم میگوید آخه چرا؟ مینا میگوید مردم لغز میخونن مرد پیری که جوون جمبولی بر نمیداره کریم میگوید مردم غلط میکنن پشت سر یه قهرمان و یه شاعر لغز بخونن مینا میگوید خوابه خوابه قهرمان و شاعر اگه راست میگی تکون بخور زندگی تو رو برا کن فردا بچه بزرگ میشه چقدر حسرت بدل باشم اقلا اگه میذاشی کار کنم باز... کریم میگوید، محیط اداره فاسده. مینا میگوید، خودت که توش کار میکنی. کریم میگوید، من مردم. زن میگوید، دلتو خوش کن، مرد. با این زندگی که هشتمون گرو پنجاست. پنجاژ. کریم میگوید، مردی چی کار به هشت و پنجا داره؟ زن میگوید، خوبم داره. کریم سکوت میکند تو دلش میگوید رنگ میکنم میرود اتاق دیگر پشت سر صدای زن را میشنود نکنی کریم با خودش میگوید میکنم و میگوید که دیگر کسی او را نمیشناسد نمیشناسی واصل شد همهتون دست به یکی کردین که سر به سرم بذارین چطور ممکنه حتی جایی که خواب نمیدیدم تو قطار حتی تو قطار دو تا مرد روبروم نشسته بودن هر دوتاشون دکتر بودن از حرفاشون پیدا بود چه دکترهایی حاضق استاد به نظرم یکشون استاد دانشگاه بود گای نگاه میکردن. معلوم بود یه چیزی هست اما اینگار شقیقه این شقیقه ها تردید داشتن رئیس قطار اومد بیلیت بیلیت تا دید گفت یالا واسل شد یهو دکترا پریدن همون دوتا دکتر که یکیشون استاد دانشگاه بود گفت واسل شد قهرمان خودمون حالا نبوز کی ببوس. اون بخ... وقت اون شما مثل شطوری که به نلبند نگاه کنه چپ چپ نگاه میکنین که یعنی نمیشناسین هاشا به غیرتتون کسی که با قهرمان شهرش اینطوری تا میکنه پیپ را چاغ میکند به متکا می دهد پاها را میکشد. زندگی چه زود گذشته بود؟ حوصله ندارد کتاب بخواند بارها گفته است: زندگی گوهر گرانبهایی است که هر لحظش قیمت ندارد برمیخیزد. روبه روبروی آینه می ایستد. هاش خیلی سفید است. تو چهل و چند سالگی؟ با سر نی پیپ پازلفی را می خاراند. رنگ می کنم می بیند که دستش میلرزد. چند لحظه چشمها را می‌بندد. پس رنگ شقیقه های سفید زرد می شود. بعد سبز می شود چشمها را باز می کند بر می گردد و می‌نشیند. چیزی تو دلش می جوشد شعر است مداد را بر می و می نویزد. شیب شدم، شباب شد، شعشعی زمان کو، خواب شدم، فسانه کو، نشعی خواب کو. ارعر بچه میآید بعد داد و فریاد زن می آید. نفرین می کند. الهی به زمین گرم بخوره هر کی روزم و سیاه کرد. کریم پیپ را کنار میگذارد گذارد، کتابچه را میبندد و دراز می کشد. یک روز بعد از ظهر وقتی کریم از اداره میرسد خانه میبیند که مینا شیشه خذاب جمالیه را کوفته است کف بالکن و رفته است می‌بیند که خورد شیشه همه جا پخش است و رنگ حتی به نرده و ستون و درها شتک زده است. کلاه بره را از سر بر با کف دست عرق سر و پیشانی را می گیرد. قدری نگاه می کند و بعد می تو اتاق. می‌بیند زنش یادداشت هم گذاشته است. من رفتم خانه مامان و دیگر هم بر نمی گردم. کلاه را میگذارد به چوب رختی و باز قدری به یادداشت نگاه می کند. معلوم است که دست مینا وقت نوشتن لرزیده است. رخت عوض میکند و میرود آشپزخانه تا نیم رو درست کند. می‌بیند که مینا همه کتاب‌های کتاب های گران قیمت را انگار دستشین کرده باشد، ریخته است تو تشت و روشان آب ریخته است و هر کتاب که خیز خورده است به بزرگی یک بلوک سیمانی شده. نهار می خورد و پیپش را میکشد و می خوابد. خواب هم میرود. عصر رخت می پوشد که برود چابخانه ی عصر طلایی. می میکند که از همان راهی برود که سالهای سال رفته بود و بعد از ازدواج دیگر کمتر گزارش افتاده بود. نرسیده به خیابان فردوسی بوی سبزی طعف داده آمده بود. سالها بود که میرک را پاک فراموش کرده بود. میبیند که دیوار باغ نوسازی شده است و در باغ نیمه باز است. کسی انگار زیر بغلش را میگیرد و می راندش به طرف در باغ. از لای لنگه های در سر میکشد. بار سوم است که پدر میرک را می بیند. نزدیک در کنار بوته گل زرد ایستاده است. به عصای آبنوس تلاکوب تکیه داده است و نفس نفس می زند. چشمان پدر میرک همانطور درشت است. ابروهاش سفید است. چاق است و انگار بس که پرخورده است و حرکت نکرده پوسیده است. رد می شود و میرود. مدیر چاپخانه اصر طلایی بغلش میکند و میبوسدش. واصل شد و قهقه می زند. بعد از این چند سال از بچه های قدیم تنها یکی مانده است. کسان دیگر جاشان را گرفتند که دور و نزدیک میشناسدشان و همه هم به نظر کریم پیر میآیند. شب میروند خیام و عرق میخورند. میگویند و میخندند. ام الفساد مرده است و جای کپرش خانه ساختند. میروند روند پیش احمد فری و شیره میکشند. احمد فری عوض نشده است. تنها موی پرپشت سرش را هنا بسته است. نزدیک سحر کریم به خانه برمیگردد. ماهتاب است. دم اتاق ایستد و به جای خالی دخترش نگاه می‌کند. جای خالی زنش. فرش را می‌کشد تو بالکن و با رخت می‌خوابد. آفتاب بیدارش می‌کند. وقت رفتن اداره گذشته است. میرود تو اتاق و دمر می‌افتد. بعد از همین روز است که مینا را طلاق می‌دهد و همه وسایل زندگی را به او می‌دهد تا سبک شود. ماهی یک بار دخترش را می‌بیند. دایی می آوردش. بالاخانه را پس می‌دهد و باز می‌گردد آخر آسفالت. اتاق سابق در اجاره چند کارگر افغانی است. همان نزدیکی‌ها اتاق دیگر اجاره می‌کنند. پدر پس گردن کریم را گرفت و فشرد جشن تولدی نشونت بدم که هست کنی زن گفت خب تقصیر به چه چیه دعوتش گردن خو. چشم کریم از حدقه بیرون زد پدر باز فشرد کادو ها؟ زن گفت با زبون آدمیزاد باش حرف بزن پدر گفت خو اگه زبون آدمیزاد سرش می شد که قمی نداشتم اگر اینطور پیش برود و اگر کریم زنده بماند، سی سال، سی و چند سال بعد، یک روز گرم تابستانی که کریم پشت میز اداره نشسته است، دعوتنامه ای به دستش میرسد. قهرمان فوتبال، دوست مشفق، استاد و شاعر ارزنده، جناب کریم خان نامی. معلوم است که دادند خوشنویس نوشته است. پاکت را باز میکند. نه باید چاپ تهران باشد کار چاپ های شهر خودش نه انقدر تمیز است و نه انقدر خوش سلیقه. چه خطی به افتخار ورود میرک جراح عالیقدر، استاد دانشگاه و چشم بر هم می گذارد هم. باید بگوید چی اوز لابد. چشمم باز می کند یه دعوتنامه. از کی؟ کجا؟ کریم باید سرخ شود. یکی از دوستان یعنی که عضو انجمن پزشکان سلطنتی. مکری باید بگوید: اوه، آه، سلطنتی؟ کریم باید لبخند بزند و به دعوتنامه نگاه کند. باشگاه نفت لباس آزاد خب چه بپوشد پیپ نو را میگذارد لبه میز قاشقک نو را از تو جبه برمیدارد چه بپوشد این کراوات نارنجی نه به سن و سالش نمیخورد اگر اشتباه نکند مال 20 چند سال پیش است این یکی چطور خوبه تیره و سنگین اما باری که گرهش از ناخون شص بزرگتر نمیشود به ساعت نگاه میکند چیزی نمانده تا شقیقه هاش رنگ بگیرد وقت هم دارد ساعت چهار سرش را میشوید و بعد ریش میتراشد حالا باید توتون خارجی را از تو یخچال بردارد خشک است دو قاچ نازک سیبزمینی میاندازد توش شلوار بوی نفتالین می دهد تو این هوای گرم شلوار پشمی؟ عیبی ندارد تا یکی دو ساعت دیگر بوی نفتالین هم می پرد نزدیک به پنج ساعت فرصت هست می مقابل آینه دیواری به نظر می آید که پوف کرده است به خصوص پای چشم ها. یادش باشد قرس ها را ببرد که سر وقت بخورد شاید میرک اگر فرصت بود و مناسب بود مواینه‌اش هم بکند استاد دانشگاه عضو انجمن پزشکان سلطنتی مردم فهمیدن چه کنن میفهمن مثل تو وقت و تلف نکردن ضرب زیدا دو زانو نشستی و صرف میر خوندی ادبیات شعر از ساکن و ازاهر حرک حرکت بالکسر جامل مقدمات قتل یقتلو دو سال تمام، مقتلون، کشتن و زمان کشتن و مکان کشتن، اونم وقتی که میتونستی تو کنکور شرکت کنی، بعد چی؟ بر میگردد به طرف میز، حب را باید حالا بخورد، چای میریزد، تنها چیزی که از مرحوم مادرش جامانده همین جا قرسی قلم کار کار است، بازش میکند، یکم بیشتر بزنم سرحال باشم حب را مزمزه می کند. تلخ است زیر لب میگوید ما شهد زندگی ز تلخی تریاک جسته ایم تو کشور دنبال چه می گردد که از لای فرتوپرت ها نامه میان میآید دستش عکس ها کجاست؟ باز کشور را زیر و رو می کند یکیشان را پیدا میکند. عکس انگار نگاهش میکند، انگار پوزخند می زند، وسوسه می شود نامه را بخواند. بعد از این همه مدت که نخوندی، اصلا چرا پارش نمی کنم، وسوسه سنگین است، پاکت را باز میکند. جناب آقای میان، طرح نظام گردش نامه ها و خودکفایی در دبیرخانه واصل شد. این مدیریت از بررسی طرحهای متفرقه معذور است. سازمان طرحها و مدیریت اداری. سر تکان دد. عکس را و نامه را پرت می کند رو میز. راستی شعر، شعر خوش آمد. روی میز است. چای را از لب استکان می مکد. می نشیند پشت میز بلند می و با آهنگ شعر سر و دست و استکان را تکان می دهد یار دیرین می که فرخنده فال هم شریف و نیک و هم عالی خسال مقدم تو جانمان را تازه کرد حب نامت جهان آوازه کرد انجمن عضوی و جراحی بزرگ اوستادی اوستادی بس ترگ دور از توپ تو بدحالان شدیم گشت واسل جمله خوشحالان شدیم خوشدل از این قامت رعنای تو سیرت نیک و رخ زیبای تو نه باب دلش نیست کاش فرصت می داشت و شعری دیگر می گفت در بحر حزج مسمن سالم عجب یاد و هوشی دکمه های تلای سرده است اگر نگینشان فیروزهای بود به رختش بهتر می‌خورد. خورد هم بد نبود اما این رنگ بد زرد چشم گربهی و رخت خاکستری سلیقه زنها از این بهتر نمی شود. سر تکان می‌دهد. کلاه بره سرمهی، کفش سفید، پیراهن سفید و کراوات آبی. یعنی از زمستان تا حالا اینقدر شکمش بزرگ شده است. حتما نفخ است. خب، با چه برود؟ نیم ساعت دیگر شاربون راحتش می کند. دو قرص میخورد. با تقلا دگمه کمر را می اندازد. به دوروبر نگاه می کند. چیزی یادش نرفته است. دستمال سفید تو جیب آن کت است. خب تا چاپخانه عصر طلایی با تاکسی می رود. بعد از آنجا لابد کسی پیدا می شود که برسانندش. میرک حالا باید خیلی پیر نشان بدهد. درس خواندن که شوخی نیست. استاد دانشگاه، جراح، عضو و انجمن پزشکان سلطنتی، باید شکسته ی شکسته باشد تحقیق و مطالعه رس آدم را میکشد حتی شاید نتواند بشناسدش یا لاوس کریم خوری پوشیدی کریم سرخ میشود پس دعوتنامه رسید کریم لبخند میزند مدیر چاپخانه اصر طلایی کارت دعوت را نگاه میکند بی انصاف تهران همه چیز خوب مال تهران دهان کریم از حب شیره خشک و تلخ است چایی هست؟ دبش بریم تو بزن میروند تو دفتر چاپخانه باید به فکر وسیله رفتن باشم تا نیو سایت رای نیست تاکسی نمیره خودم میره بی خیالش روز کریم سر راه دو شاخ گل میخرد. اوذکرین آخر شب بیام دنبالت؟ با یکی از حذرات برمیگردم. چمن باشگاه نفت خونک است. نرم بادی از کارون میآید. هنوز نصف بیشتر میزها خالی است. نور ملایم حبابهای رنگی آرامش میدهد. باریکه‌های های ریزی شده حاشیه چمن آب پاشی شده است. بوی گل و سبزه خنکای شب را بیشتر می‌کند. کریم پیش می‌رود. از جایی صدای شُرشُر آب می‌آید. صدای کسانی از دور و نزدیک می‌آید. کریم می‌ایستد. انگار تردید دارد. به دور نگاه می‌کند. کاغذ تا شده شعر دستش است. اگر به توانت همان اول بعد از احوالپرسی شعرش را بخواند بهتر است. کف دستش عرق می کند نرمه دماغش می خارد. کاغذ را می گذارد تو جیب چه خارش تسکین ناپذیری آقا منتظر کسی هستن سر بر می گرداند سر پیش خدمت است، دست رو دست معدب ایستاده است، بله نه نه خیر به شاخه های گل نگاه می کند دنبال کسی می گردین؟ نگاه کریم همچنان به شاخه های گل است. اه، نه بله بله من میتونم کمکتون کنم پیداشون می کنم. بله قربون در خدمت گذاری حاضرم به سر پیش خدمت نگاه می کند تا از زیر چراغ آبی می گذرد. می روید تو تاریک روشن بعد حباب قرمز. یکو صدای کسی برمیخیزد بلند و بیقاعده، واصل شد تکان می‌خورد بعد صدای خنده می‌آید صدای خنده تهرنگی آشنا دارد برمیگردد به طرف صدا آرام پیش می‌رود تو سایه روشن ایستد، پیشتر میان چمن زیر حباب زرد مرد تنومندی روی صندلی نشسته است و قهقه میزند و پیچ و تاب میخورد و با کف دست پی در پیدرپی میزند رو میز و بشقااب ها و لیوان ها و بطری ها تکان میخورند و صدا میدهند. کریم پیشتر می رود. مرد پیراهن سرخ برراغ پوشیده است. سرش یک خرمن مو دارد. یقش باز است و قه قهه که میزند شکمش مثل مشک دوغ که بزنند تا کرش را بگیرند جا به جا می شود قه بلند بلند می خندد. کریم پس سر و گرده کرمی را می بیند. نشسته است روبروی مرد تنومند شانه هایش اما صدای خندهش نمیآید. مانی و امین و ایمن هم هستند همه پیراهن پوشیدند ساده، رنگی و یا گلدار کریم حس می کند که نیمتنه مثل زره سنگین است صدای کرمی را میشنود. زنش و زلده کرد مرد سرخپوش می زند روی میز زنش، زنش، زنش <تصفيق> و قاه قاه بلند بلند می خندد شد این دفعه صدای مانی است زنش میگه بچه شیر میخواد اوسکریم باد به قبقب میندازه میخونه ما همه شیریم شیران علم مرد گنده میزند روی میز علم علم علم و قاه قاه بلند بلند میخندد اوسکریم علم کریم فکر میکند که حرفها اصلا خنددار نیست نمیفهمد چرا مرد شکم اینطور قهقه میزند و اینطور روی میز میکوبد خیس عرق می شود. میگوید می گوید که به کریم گفته است که کار تجارت با شعر و شاعری جور در نمیآید. سر بزرگ مرد سرخ پس و پیش می شود. شاعری شاعری اوس کریم و میترکد بلند بلند قاه, قاه می خندد. نکند میرک باشد. دست کریم به جیب می رود تا دستمالش را درآورد. کاغذ تا ی شعر میآید دستش شاخه های گل مزاحم است به دورو بر نگاه می کند جلو می رود و می گذاردشان روی دیواره سبز حرس شده ی شمشاد گره کراوات را شل می کند کلاه بره را از سر بر می دارد. عرق پیشانی و میان جای سر را با کاغذ پاک می کند حواسش نیست؟ خنده مرد میآید. کاغذ را مچاله میکند و میاندازد. بی است. چیزی تو دلش میجوشد. انگار باید چیزی بگوید. راه میافتد، کراوات را باز میکند. نزدیک در می ایستد و از دور نگاه میکند. مرد گنده هنوز روی میز میکوبد و پیچ و تاب میخورد. دل کریم مثل انار میترکد. کسافت گنده گهلوله پیپ را به دندان میگیرد گیرد نیمتنه را در می آورد. از در می میزند بیرون یک لحظه درنگ میکند کبریت میزند پیپ را روشن میکند پک چهار میزند و راه میافتد به طرف جاده